اندورفین در طی انجام های بدنی هیجانات، احساس درد خوردن غذاهای تند و فرفری و همچنین احساس عشق و اوج لذت جنسی و همچنین در بارداری تولد و شیردهی ترشوهش افزایش پیدا میکند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 افزایش میده. علاوه بر این خندیدن شنیدن آواهای آرامش بخش هم ترشح اندورفین رو در بدن مادر افزایش میده علاوه بر این خوردن مواد غذایی شیرین مثل شکلات، مثل آبنباد ترشح این هرمون رو تحریک میکنه خود درد زایمان و فرایند زایمان هم منجر به تحریک ترشوه اندورفین میشه